الا قستون پنج جوانه 2008 در نامه قبلیت نوشته بودی گمان میکنیم با گرفتن تصمیم های عاقلانه و برنامه‌ریزی کردن میتوانیم جریان زندگیمان را مهار کنیم اما مگر ماهی میتواند اقیانوسی را که در آن شناور است مهار کند این فقط باعث به وجود آمدن انتظارات غیرواقعی و نومیدی و دلسردی می شود. اما کل زندگی من شده برنامه ریزی کردن و لیست درست کردن عزیز. مسئولیت همه نیازهای خانواده به عهده من است. تا جزئی ترین کار را باید خودم نظارت بکنم. از هر کس که مرا میشناسد بپرسی همین را میگوید مادری پیرو قاعده ام دوست ندارم کسی از قواعدی که وضع کرده ام عدول کند البته این را هم بگویم که قواعد من مثل قواعد شمس جساب نیست یک بار دختر بزرگم از دستم عصبانی شد و گفت در زندگیشان تاکتیک های چریکی اعمال می کنم. می گفت به جای اعلان جنگ آشکار از تکنیک رخنه در زندگیشان استفاده می کنم. ترانه ای هست که سرا سرا یادت می آید. این ترانه وصف حال من نیست. آنچه باید بشود می شود. اصلا نمیتوانم تسلیم باشم تو آدم دینداری هستی من اما نه گرچه هر هفته همه خانواده سبت را جشن میگیریم. اما این برای ما بیشتر از آنکه ضرورتی دینی باشد به نوعی سنت و نیاز فرهنگی تبدیل شده آن وقتها که دانشگاه بودم مدتی به عرفان شرقی علاقمند شدم و در باره و تائوئیسم خیلی تحقیق کردم. حتی با یکی از دوستانم برنامه ریزی کرده بودیم به هندوستان برویم و در آشرامها بمانیم. اما آن دوره زندگیم خیلی طولانی نبود. بعد با خود گفتم، آموزه های هرچقدر هم عالی باشند، نمی توانند نیازهای انسان مدرن را برآورده کنند. امیدوارم سردیم نسبت به دین ناراحتت نکرده باشد. چون می خواهم همیشه در برابرت صادق باشم، اینها را نوشتم. مثل اعترافی در نظرش بگیر که زمانش فرا رسیده. آن که ندیده دلش برایت تنگ شده الا سلام بر الای چریک نامه را در آمستردام دریافت کردم داشتم کارهایم را می کردم تا به مالاوی بروم برای عکس گرفتن از روستایی که ایدز در آن شیوع پیدا کرده و دو سوم بچه ها پدر و مادرشان را از دست دادهاند. اگر کارها رو به راه باشد، چهار روز بعد به خانه برگشتم. می توانم امیدوار باشم که برمیگردم؟ بله، خیلی خوب. می توانم زمامش را به دست بگیرم؟ نه، تنها کاری که می کنم این است، که لپتاپم را بردارم. بکوشم یک ارتباط اینترنتی خوب پیدا بکنم و با این امید که یک روز دیگر توی این دنیا هستم حرکت بکنم. بقیه دست من نیست. دست تو هم نیست. صوفی ها به این بخش که نمی توانیم زمامش را به دست بگیریم نمی توانیم کنترلش کنیم انصر پنجم میگویند پنجمین پنجم انصری که همراه با عناصر چهارگانه آتش و خاک و باد و آب دنیا را شکل میدهد. دهد. بودی غیر قابل توزی غیر قابل مهار و در نتیجه بودی که نمی شود آن تاکتیک های چریکی به کار بست. ما آدمها با آنکه این انصر را به طور کامل درک نمی‌کنیم اما میدانیم که هست. نوشته بودی که نمی‌توانی تسلیم باشی. اگر منظورت از تسلیم بودن این باشد که آدم هیچ اراده یا مقاومتی نشان ندهد، فکر و نظرش را بیان نکند، من هم به این نوع تسلیم بودن اعتقادی ندارم. چیزی که من از تسلیم بودن میفهمم ضرورت رعایت کردن انصر پنجم است. هنگامی که با تصوف آشنا شدم در پیشگاه خدا به خودم قولی دادم. قسم خوردم هرچه از دستم برمی آید انجام بدهم تا از جاده سواب خارج نشوم. در مقابل نفسم سرخم نکنم و باقیش را به او فقط به او بسپارم سپارم. پذیرفتم که در ماورای مرزهای محدود من چیزهایی هست. خلاصه اینکه به او ایمان آوردم. ایمان به عشق میماند نیازی به اثبات ندارد. توضیح منطقی نمیخواهد: یا هست یا نیست. مرا آدمی دیندار دانستهی حالان که نیستم دیندار بودن و ایمان داشتن یکی نیست تفاوت این دو مفهوم هیچگاه مثل دوران کنونی آشکار نشده بود در دنیای بزرگ تنگنایی وجود دارد که رفته رفته عمیق‌تر می‌شود. سیستمی ایجاد کرده ایم که مستقل از دین و دولت و جامعه آزادی فرد خردگرا را پایه و اساس قرار میدهد از سوی دیگر انسانها ها نتوانسته اند از جستجوی معنویت دست بکشند می بدانیم آن سوی خرد چیست پس از این همه مدت تکیه بر خرد کم کم داریم میپذیریم که ذهن ممکن است محدودیت هایی داشته باشد امروزه درست مثل دوران پیش از مدرنیته توجه به معنویات در صدر قرار دارد همه جای دنیا رفته رفته آدمهای بیشتری سعی می کنند در زندگی سریع و پرمشغلهشان جایی برای امر معنوی باز کنند اما امر معنوی نوعی سرگرمی یا به قول امروزی ها حابی جدید نیست. چیزی نیست که بدون ایجاد تغییرات اساسی در زندگی و شخصیتمان بتوانیم به درکش کنیم. گفته ای آشپزی را دوست داری. شمس تبریزی دنیا را به دیگی بزرگ تشبیه می کر. دیگی که آشی مهم در آن می اعمالمان، احساساتمان، حرفهایمان حتی فکرهایمان را توی این دیگ می ریزند. برای همین باید از خود بپرسیم چه چیزی به این آش در هم جهانی اضافه کرده ایم. دلخوری، عصبانیت، خونخواهی و خشونت، یا عشق ایمان و هماهنگی و اما تو الای عزیز به این آش که انسانیت نام دارد چه چی چیزهایی اضافه می کنی؟ من هر وقت به تو فکر می کنم می چیزی که به دیگ اضافه می کنی تبسمی بزرگ است پیش از آن که بشناسمت دلم برایت تنگ می شود. Dus Dorat Aziz.